کتاب افسانه های ملل نویسنده محمد مصطفی نژاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده الهی اصلانی داستان آواز آرمادیلو توی یه دشت سرسبز کنار برکه زیبا آرمادیلوی جوانی زندگی میکرد که با تمام وجودش عاشق آواز خوندن بود اما مشکل آرمادیلوی بیچاره این بود که اون اصلا صدای خوبی نداشت و کسی هم آواز خوندن رو بهش یاد نمیداد اون همیشه بعد از هر بارون خودشو با پوسته سنگین و سختش به زحمت به برکه میرسون تا به آواز خوندن دست جمعی قرباقه های شاد گوش بده و از صدای زیبای اونها لذت ببره. آرمادیلو زبون و قرباقه ها رو نمیفهمید. با این حال آواز خوندن اونها رو خیلی دوست داشت و سعی میکرد زیر لب به همراه اونها آواز بخونه. هر وقت که به اونها گوش میداد آهی میکشید و با خودش میگفت چی میشد من هم صدایی خوبی داشتم و میتونستم مثل اونها آواز بخونم اما قورباغا که میدونستند آرمادیلو زبونشون نمیفهمه اونو مسخره میکردند و بهش میخندیدند. اونا به هم میگفتن آرمادیلوی نادون آرمادیلو که نمیتونه آواز بخونه اما آرمادیلو فقط به جیغ گوش میداد و با حسرت زیاد به اونها نگاه میکرد یه صبح قشنگ آرمادیلو مثل همیشه به جنگل سبز رفت و برای پیدا کردن غذا مشغول جستجو شد. بعد از کمی گشتن روی تنی یکی از درختان یه لونه بزرگ از کفش دوزک ها رو پیدا کرد و با سرعت مشغول خوردن شد. همینطور که داشت به غذا خوردن ادامه میداد، یه مرد روستایی رو دید که داشت از جاده وسط جنگل رد می شود. اون یه قفص پر از قناری های رنگارنگ رنگ دستش بود و داشت به سمت روستا میرفت. قناری شاد شروع کردند به آواز خوندن. آرمادیلو از صدای زیبای اونها هیجان زده شده بود و بدون اینکه خودش متوجه بشه، دنبالشون را افتاد. آرمادیلو با اینکه نمیفهمید قناری ها چی می خونن اما از صدای اونها واقعا خوشش اومده بود و هرگز توی عمرش چنین صدایی نشنیده بود. همینطور که داشت دنبال مرد روستایی میرفت و از صدای چهچهه قناری ها لذت میبرد، با خودش فکرد کرد وای چه صدای قشنگی دارن اونها حتی جیرجی هم بهتر میخونن، ای کاش من هم صدای به خوبی اونها داشتم. اما قناری ها هم اونو مسخره میکردند و بهش می خندیدن. هه, هه آرمادیلوی احمق، آرمادیلو که نمیتونه مثل ما چهچهه بزن و آواز بخونه. کم کم به نزدیکی روستا رسیدند و آرمادیلوی بیچاره دیگه از راه رفتن خسته شده بود. بعد از اینکه مرد روستایی به همراه قناری ها به داخل روستا رفتن، آرمادیلو خسته و نامید وسط جاده ایستاده بود و با حسرت دور شدن قناری ها رو تماشا می کرد. اون دیگه توان راه رفتن نداشت بنابراین با زحمت زیاد خودشو به کنار جاده کشند و همون نشست. هوا دیگه تاریک شده بود و آرمادیلو راه رو هم گم کرده بود همینطور که دنبال راه برگشت به بخونه بود به یه کلبه خیلی عجیب برخورد کرد کلبه کمی دورتر از روستا قرار داشت و یه جورایی هم ترسناک بود وقتی نزدیکتر رفت جادوگری رو دید که با کلاه نکتیز و ریش بلندش دم در ایستاده بود و داشت به گلهای بلند و زیبایی توی باغچه آب میداد آرمادیلو با خوشحالی و به آهستگی خودشو به جادوگر نزدیک کرد و گفت سلام آقای جادوگر. من شنیدم که جادوگر خیلی دانا هستند و میتونن کارهای عجیب انجام بدن. میشه یه کاری بکنی که من هم بتونم مثل قناری ها و گرباقه ها و جیر ها آواز بخونم. آخه من آشق آواز خوندنم. ولی صدای خوبی ندارم. چیزی هم از آواز خوندن بلد نیستم. جادوگر که خیلی مهربون و مهمون نواز بود با تعجب به آرمادیلو نگاهی کرد و اون رو به داخل کلبهش دعوت کرد بعد برای آرمادیلوی خسته و گرسنه غذای مفصلی از حشرات توی باغچه آورد و اون مشغول خوردن شد و همینطور که داشت غذا میخورد ماجره زندگیش رو برای جادوگر تعریف کرد جادوگر بعد از اینکه ماجره ریشنی شروع به فکر کردن کرد بعد از چند دقیقه همینطور که داشت ریش بلندش رو نوازش میکرد به آرمادیلوی غمگین نگاهی کرد و گفت خب من میتونم کمکت کنم اما آرمادیلو با هیجان پرسید اما چی؟ جادوگر خم شد و اونو از زمین برداشت و پرسید اگه خیلی اصرار داری که بتونی آواز بخونی من میتونم این کار رو برات انجام بدم اما یا تو میتونی به های اون رو بپردازی؟ آرمادیلو جواب داد چه بهایی هر چی باشه قبول میکنم جادوگر گفت برای اینکه بتونی آواز بخونی در عوض مجبوری که تبدیل به سنگ بشی آیا حاضری این کار را انجام بدیم آرمادیلا با هیجان به جادوگر نگاه کرد و پرسید یعنی منظورت اینه که اگه سنگ بشم میتونم آواز بخونم بعد به فکر فرو رفت و با خودش گفت خب اگه من تبدیل به سنگ بشم پس خونم چی میشه دیگه نمیتونم برم جنگل و غضههای خوش مزه بخورم دیگه نمیتونم به کنار برکه برم اون شب آرمادیلو پیش جادوگر موند و تا صبح با خودش فکر کرد. بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسید. اون دیگه حاضر نبود با غمگینی زندگی کنه. فقط آواز خوندن بود که میتونست اون رو شاد کنه. اون تصمیمش رو گرفته بود. بنابراین صبح روز بعد به جادوگر گفت من میخوام به شادی برسم و به خاطر اون حاضرم که خونه و جنگل و همه ی چیزهای دیگر رو فراموش کنم. بنابراین حاضرم سنگ بشم. آخه من آشق آواز هستم. جادوگر خیلی ناراحت بود و نمیخواست این کار انجام بده اما بعد از اصرار زیاد آرمادیلو به قبول کرد. جادوگر چوب جادوی سیاهش رو به طرف آرمادیلو گرفت و بعد از خوندن یه برد عجیب و غریب اونو تبدیل به سنگ کرد. بعد با آرمادیلوی سنگی یه وزیله موسیقی زیبا ساخت و اون رو به بهترین نوازنده روستا فروخت بعد از مدتی نوازنده که میخواست به شهر بره و در جشماری موسیقی شرکت کنه به طور اتفاقی به نزدیکی برکهی که آرمادیلو زندگی میکرد اومد و مشغول نواختن موسیقی شد. صدای موسیقی اونقدر زیبا بود که همه حیواناتی که اون نزدیکی زندگی میکردن به سمت برکه اومدن تا به موسیقی گوش بدن. اما وقتی جیر جی و گرباقه آرمادیلو رو توی دستای نوازنده دیدن با تعجب به هم نگاه کردند. آرمادیلو داره آواز میخونه و اینطوری بود که آرمادیلو به خاطر اینکه عاشق آواز خوندن بود از خودش گذشت تا به آرزوش برسه شما حاضرید برای رسیدن به آرزوهاتون چگار کنید؟ سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کوتوله ها ماجراهایی از جادویارها، سفر به سرزمینهای جادویی و تلزم شده، رفتن به دنیای پریان، ماجراجویی در سرزمینهای زیر دریا، همه در در اینها و بیش از اینها. در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی